حکایت، طایفه رندان به خلاف درویشی به در آمدند، و سخنان ناسزا گفتند، و بزدند و برنجانیدند. شکایت از بیتاغتی پیش پیر طریقت برد که چنین حالی رفت. گفت ای فرزند، خلقه درویشان جامعه است. هر که در این کسفت، تحمل بی مرادی نکند مدعی است و خرقه بر او حرام دریای فراوان نشود به سنگ، عارف که برنجد تنکا است هنوز، گر گزندت رسد تحمل کن که به عف از گنا پاک شوی ای برادر چو خاک خواهی شد خاک شو پیش از آن که خاک شوی